پیغمبر خدا به عمار یاسر فرمودن همتون حدیث رو میدونید عمار اگر بعد از من همه خلق خدا تو یک مسیر رفتن علی تنهایی تو یک راه رفت و برو اون راه رو را. سلام الله علیه. یعنی چی یعنی مردم اگه همه هم باطل شدن تو یه نفر بقای تو حقبری میتونی معنی حدیثو ببینی وگرنه پیغمبر پس بیهوده نعوذ بالله گذافه میگن و ما عن الهوا انه و الا وحی و نیوها یعنی چی؟ همه مردم اگر امار یک را رفتن علی به تنهایی یک را رفت تو از اون طریق برو یعنی عزیز من اگه دیدی همه راه باطل رفتن تک موندی بمون لا تستوهشو فی طریق الهدا لقلت اهله. نهج البلاغه است اگه دیدی اهل حق قلیلن لا تستوهشو به وحشت نیفت تو راه خودتو بگیر برو جلو نگاه نکن مردم چجوری انجام میدن